<سؤال> بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ و صل سیدنا رسول الله و آن و یکیم و خاتری من همی اصمیم و لحظ و دائمت و حالا ادار و اشمعین اللہ و اشمعین و ارخم از بابی رو که مرحوم ساعت وساعت قرار دادن برای اخذ از لحیه یا قرار دادن و از مازاد قرار در حاله تخفیف لحیه استحباب تخفیف و تدبیرها تدبیرها من آرزین و تفتین لحیه در اصلاح که خوب صاحب و صاحب و خودش همه برای کرده حالا روایت اول این ماه رو خوندیم که ارز در کتاب کافی آمده سندش ارسال داره مشکل ارسال و بقیه مشکل خاصی نداره قال رئیس عبا جعفر علیه السلام و الحجام یع خود من لحیت حقال درده سال مسائل از ان وهضر دره ها استصار استحباب کرد استباب تذویر بدهید و این ظاهره هم متعارفی بود آ امر عادی خارجی بود یعنی چیزی نبوده که استحباب در بش چون عرض کردم مثل ای از اهل سنت نادره نسبتتا قاه بودن کردن ری شماده کرده و نبا گرفت کوتاه نباید کرد, کرد. کتا کرد. این بهوارد نشون میده که اه جایز بوده. و مثلا از این رواز میشه فهمید که عقد از طرف این یعنی از آرزه هم از مقبلن نهیه این پرو بشینه اما استحباب تدویز نمیان بلا مقال ما فارسیجی ببیشیم به احرابی از این مقال کن گلی بکن نه اینکه مثلا این جاش بشه دراز, بشه دراز بشه نه اصلا تاکیه اگه... یه چیزه خود دیگون وسائل چیزه آراشوهایی زنن که مثلا بعضی چهره و مثلا هیچ دراز باشی بهتر بردیش گرفت باشه و در آخری حضرت مثلا صورتشون شاد مناسب بوده که به این صورت باشه و رواه و صدوق من دیرود حد که این صنده کلینی حال داره مثلا صدوق از کتاب محمد از و محمد مسلم نهار کرده یه توضیحی دیرود حد کردن که سندش محمد مسلم از کتاب علاه خب در این سند کلینی هم اسم علا نید کتاب مشهوره الان از اینجا نیست من دیروز این توضیح هدایلم و عرضم کردم اشکالش و مخفیش و جوابش نشون داده است توضیحات فقط نقطه ای مونده است چون درست ما خیلی مناقصه میشیم این نقطه هم این نقطه هم عرض بکنم کنم یکی آدمانه ایه متعرض شده باشم بعد از صورتش این اواخر بهتر متعرض شد و اون این که از خلی معروف صدوق از مقرراتی که میکنه ابتداع شخص میکنه بعد در مشیخه سرندش اوزی یا مشیخه اختلاف هم دارم که مشیخه یا مشیخه یا هر کدوم به یک معناست مشیخه به یک معناست مشیخه به یک معناست اون بختم اینجا نمیشه در اونجا سرند خوبش رو نوشه ببینید محلوم شیخ تروسی هم هم کرده اما شیخ تروسی روشش اینجوریه ایشون میگه اسمان هر کسی که حدیث بهش اتضاع نو طریقا اینه در مشیخه اینجوری شما مشیخه در تحبیر از توس لگه طریق این سوسی اینطور گهه محبوب ابتدا به اسمش اینجوری میکنه اله حسنان صدوق که ابتدا میکنه دیگه روا اله حسنان محبوب روا دفر کرده این دو مشیخه ها با هم بگه فهم اون وقت گاهید مشکلی که در صدوق هست خبایی گوه روا حسنان محبوب اصلا در کتابی کنیم کلا ما کنیم محبوب به انسان. به مشکه مراجعه میکنیم حال شکن مشکل اساسی در کتاب صدور اینه که همه جا روا نمیگه بعضی وقتای یه قلب حسن محبوب بعضی وقتا بگیرواید حسن ما. بعضی وقت میگه و رویان حسن ما. بعضی وقت از محبوب, محبوب. محبوب نه مثل وقتا از بعضی وقت میگه و سعل علی عبدالجبر اخا و محمد عبدالله و سعل تو <تصفيق> اون روال این هم محمد عبدالله بیرده تو صدوق تحبیره به سعله می کنیم از این به, به که بیایید در این تحبیرها پر بگذاریم چیه سوال اینه اون عبارتی که گفته کل ما کانه محمد عمید عمید همه این تعبیر یا اونجایی که میگه روا محمد و چون خیلی جوان روا محمد و موسیلن برد محمد المثلن. حالا تأجیم نه که اینجا فروزه وقال محمد و نداره روا من بیچاره، در اینجا رفت وقال محمد و موسیلن بعض جا داره رساله بعض داره در رو بگه از این سکت تمام این تأبیرات تفنان در عبارت فهم میکنه بیش شکیه این مثلی که من دیگوزه ارسران برمیدیم به مشیخه بنابراین که قاله در روا یک معنی باشه چون ممکن است کسی بگه نه اینجه کسی بگه قاله بخواهد بگه از کتاب علا نیست حقیقا گفت روا محمد محمد کتاب علا هست در مشیخه اولید چون این حدیثم علا ما در کتاب کافی داریم اصلا اسم علا که چیست نظرم سویدن بعد از خوابیان عدی علیوغن محمد محمد از این بگیم مردم صدوق این زرافت رو به کار بارده روشن شد این زرافت صدوق ما اشاره بکنه که از کتاب علا نیست روشن شد ببین نشیخه بر نگردی البته از کتاب معتقل یعنی دو بحث با حضوری خلص نشه من به نظرم مشکل کار اینه. یه بحث اگر گفت روا و رویه حجت یا بقید روا حجت رویه حجت هست ما اعز کردیم به لحاظه حجت ظاهر هواشی گردو یه بحث دیگه این که اگه گفت روا و رویه واقعا هر دینشون هست مثلا گفت روا یعنی به منشیخه برگردید گفت رووی نه به منشیخه برنگردید آیا گفت روا محمد بن به منشیخه برمی‌گرده از کتاب الان اما گفت کار محمد بن مسلم قبولش داره اما از کتاب الان نیست فقط اون نقطه فرقید مثلا الان اون در صد در کتاب کلینیه اما تو کلینیم برقی گرفته احتمالا در میراسهای برقی بوده صدوق قبولش داره اما از کتابه نیست. اونی که در مشیقه گفته نیست این نفترم اینجا چون دیگه خیلی از مکاس رو مخونم ارز بکنم که دیگه, دیگه پیداده بیشه این ممکنه گفته بشه که اگه گفت قالب ایر از رواز الان همه عملا توی این کتابه همین میبینیم یعنی اگر این مطلب درست باشه خیلی دقت که مرمون شیخ صدوق بالا رو بریم واقعا جوبه ای باشه در پندوق درست اگر گفت روا یعنی از اون نسخه علا اگر گفت قارم محمد نسخه از اون نسخه نیست اما حجت نیست وقتی در نگاه میکنید این کلینی قبل از صدوق نه که صدا برقی توشم علا کلن نیست اما جزا میراسه برگیه پس سر سرین که ما اون سادوگری اعلقالی حالا نه نه خدا کار پاکان را این زوگی پوچی های شری نبوده نه خیلی نه نه نه نه نه نه نه کار اینجوری نبوده این نه خیلی روش کار نشده چون واقعا هم خب میراسهای بغداد خیلی تمیز بوده انصافا هم ارز کردم از ساله بعد از آمدن کلینی و بغداد انصافا بیشترین تأکی همین همین الان که من در خدمتون نوشتم نشسته، چیزی در حدود 90 درصد میراسهای علمی ما مال مقتر بغداده بالای 90 درصد همین این نوش مال درست درسته نوی منصور و واسطی خب مرحوم شیخ واقفیه. نه از آن در کتابی رجالی ما رو واقفی میدارن. چون شیخ مست. میراست مو برگشت و اقصد دیگه. حالا خود ما شبه داریم. ما همیشه این قاعده رو ارز کردیم. به خلاف این نظریه محروف. هرچی انفرازات شیخ باشه. در هر بابی یه تعمل نیم خب ردش می کنیم. تعمل باید بشه. مثلا واقفی زنگی در کتاب چشی آمد واسطی آن واقفی. این یعنی شیخ به نظر ما به کتاب کشی اعتماد کرده خب نجاشی یه کتاب رجال کشی کتابون کبی خب و کفی الاخلاق خب اونم که از اخلاق تکیه واجه شیخ این کتابون کبی رو حسن التوابع دو دیدگاه راجب یک کتاب واحده دیدگاه شیخ با نجاشی راجع یک کتاب کشی دو دیدگاهه آقایون ما الان توجه نکردم ما را همراه تحلیل تاریخی ما همه نکته‌ای که ما داریم این نکته که اگر ش... ما جاهای بریم که شیخ انخرازن میگه مثلا واقفی یا اگر شیخ جایی انخرازن گفت واقفی یا ما دست نگه هم قبول نمی‌کنیم، نمیگه هم رد میکنیم تعمل بیشتر حالا اینجا که برای ما واضح هر کشی گرفته نجاشی هم رو داده نکنسته واقفی یا احتمال میدم که نجاشی قبول نداشت و از دیگری کنان جاش اینجا حدیث شماره دو این هم یعنی ادتون من ارسها بنا این احمد احتمال میدن این احمد رو مرحوم سال وسائل ترخیص کرده این احمد در جمع احمد قبلی یعنی احمد برقی نه احمد هشالی ان عثمان بن ایسا که خب این خیلی معروف واقعی است این عبدالله بن موسخان که جز اجلاله این الحسن زیاد این شفت کند طرح در همی که جلد کافی داره آشنایی از نداریم. از امام باغر حدیث نهار کرد قال رئیس عبا جعفر علیه السلام امام باغر از خفت فرق لحیته محاصلشون رو کوتاه کرده از از راجی به حسن زعیه آسوم الان معلومات نداری. این حدیث در کتاب کافی هست یه نطفی هنی داره این حدیث که من مجبورم یک روزی به در که ان شاءالله هم ازش استفاده کنیم به درتون میخوام همینطور که ایشون در اینجا در هاشینه شده در 486 که ایشون در باب لهیه داره ایشون بابش عنوانش باب لحیه تبشاره به در کافی اگر کلام مردم کله در این باب اصلا روایته اتفاق النهار میوازه تمام روایتی که ورده مال کوتاه کردن میشه حدیث شماره 4 همینه این در این کتاب که چاصله ها آنها به احمده و عبی عبدالله برمیگرده که برگی باشه و اصمان رعی چا عباجعفت از خفت لحیفت این یک حدیث اصطورم که چهارصد به اصطلاح چهارصد در قبل است چهارساد و, و با امان بابل فروش در بابوی فروش حدیث شماره پنج با نواتی که اینطوره این ادتا من اصحاب نه همیستن هم دینه انا احمد نبی عبدالله که برقی باشه برقی فسن انا عثمان ابن ایسا که واقعی است و گفته که اینجا ز اصحاب اجوان هست انا عبدالله ابن موسخان که از اجلاست انا حسن زیاد عجیب میگه تمام یکیه حال دخل سالا عبیجه فی بیت منجد خیلی اتاقه برسته با قول موزیما شیک و ترتمیز و لباس های پارچای پشنگ صبح من اتو الیه من الگر روزه بعد درستن روغو فی بیت لیس فی الله حسیر اونجا حسیر روز علیه قمیس و دلیل فقار ال رایته، لیس بیتی اون خونه من نبود انما هو بیت المرعه این مال ایال من بود خونه خودمون خانم بود و کان امس یومه ها دیروز روز ایشون بود این یه تیکل بایده هلا چون این آرومی که اینجا نوشتم توضیح کافی هم نفروندن و خود ایشون مرموم کلینی در همین جلد شیشی که الان من دارن در اینجا سفته چارصد طبعا خوب همه چلوشی شو چستوشی شو هفتادشی شو, شو. باز ایشون با بیذارن به نام لخص المعصفر استلاحا اصفر رو که استلاحا بهش خورتون هم میگن یه نوع گیاهیه که گل تقریبا رنگش رنگ کرتغالی رنگه مثل زعفرانه. استلاحا این اصفر گاهی بهش استلاحا زعفران کازد میگن چون زعفرانه که این گرم بود گاهی اوقات لباسها رو با این رنگ میکردم مؤثر مراد شریه رنگ زعفرانه این در باب لفسل مؤثر حدیث شماره 13 این من از اصحابنا انا احمد بن محمد بن خالد که تفسیر کرده در ورقه کتاب انا عثمان بن عيسى انا که هم ابن هم سنده انا لحسن زیات البصری این حسن زیات و حسن زیات بسی یک نفره و ایشان در کتاب رجال ما نداره یعنی مثلا فرض کنید رجال برقی در اصحاب باقی خواهد اسمشو برده اما چیزی را که به ایشان ننوشتن ما این اینجور افراد غالبا در حد راوی نبودن چون راوی بانهانی که مثلا آلم است و اصف بشه و سمام بشه و اینا در حد به اصطلاح اصلا اینکه انسان شیعه بوده خدمت ایمان رسیده خصهی ای دیده نه رو کرده بیشتر این جریان درخورده نه اینکه رفت راوی مصطلح باشه که ما دنبال حال شرحالش رو ترجمه رو این خصوصی یاد. گفت این یک نقطه یک نقطه ایسی من کدارا از کردم روالات و روالات به بلحاظ جغرافی ها هم بررسی بکنید شون کمتر بررسی شده از کردم به طور طبیعی در میان شهرها از مهم‌ترین شهری که تدوین میراث ما شد در درجه اول کوفه است بحثه تقریبا در درجه دوم با یک تفاوت زیاد مثلا اگر 80 درصد میراث ما بحث کوفه است بحثه مثلا در در درصد حالا مثلا قم خیلی کمتر این درصد مثلا اما تفاوتش با قم با کوفه هم خیلی زیاده بحثه خیلی زیاده و اصولاً در بحثه اکثریت با ها بود لذا حدیث یک مشکلات خاص خودش داره چون محیط ادبی نبودش زیاد نبودن در کوفه زیاد 600 تا یا 900 تا فقط توی کوفه کوفه مثلا حضرت جعفر رو محمد لذا مبایسه و بحث و با اون معارضه این برای معارض اون تعارض داره, داره این در کوفه زیاد بود تدوین همون ها بیشتر از ها این معنی مشیت شخصیت و درزداریات هم که اصطلاحاً واقعاً بی‌توضیح مختل. زیت اندله اصلاح مراد ذی طرف ما به فارسی روان می‌گه اما این اندله از ذی به ذکر این کار صراحت شده و احتمالی که اشیای اون عادی بوده در ذی راوی و علما این ها نیست و تا اونجایی که ما می‌دونیم ظاهراً یک سفری به مکه یا آنرالای امریه حجرفته این ملاقات با ما باهر باشه این در صفحه 448 در کتاب کافی این اون روایت متصلشه مح موقصلشه که من از کل که خب متون خوب بق بکنید ما مسئله تختیه حدیث اینتون دو برزار ب کرده کافی هم حدیث حیث کردیم. الان من تا سرال از این شخص خومدم یکی راجب این اینکه خ لعیته که در باب لحی آورد. یکی که در خانه که میدن خانه خیلی مرتب بود چی بود که از من زن خانه لنه گومبال من نبوده. حالا در اینجا در این کتاب در این صفحه چهار اینطوره. سفیه هشتی این الحسن زیاد البسری قال دخل تو علا عبی جعفر علیه السلام ان و ساه بندگی و اداهو فی بیت منجد دران خوبی منباره باز این جهاشو و و علیه ملحفتون وردیه حالا خیلی مناقبتی نشید به لحاظ چاپ کتاب کافی واز و ردیه نوشید این باید باشه وردیه رنگ گلی خب ماها الان واقعا امپیر مثل یکی از مراجع اشیه یه خبای گلی رنگ داره. رنگ میشه خیلی تنندهی داری یک رنگ مناسبی نیست و علیه ملحفتون ملحفه خودش ده اما تقریبا حالت جبه, جبه نستارد اون که لباس روی که نکوشید ملحفتون وردیه این وردیهش خب واقعا وقت حفظه لحیته در کردید این حفظه لحیته حفظ یک جا رواد مستقل اولو کلید بیت المنجد یک جا آورده در این جا داره وقت حفظه لحیته اونی که برای شما خوندید که این جا هم همین محنه آورده صاحبتال حدیث دو قال رئیس عباد جعفت قد خفظه لحیت هست دقیقی کسی خفظه کلید از چیز روایت این بوده؟ دخلی که اما می کرده انه و سو اینجور روایت از کنشی دختر دکتا این خیلی مفیده باهای خیلی جالبی رو بازی کنه اینجور روایت که خود کلی می این صورت تختیرش کرده انه و ساه بندی و اله و فی بیت منجب و علیه منحفتان وردیه و قرد حفت به لحیته این اینجور کرده رئیس عبا در و حفت به لحیته همون کرده. تو چیتت برای حدید شناسی خیلی با تو باز می‌کنه خب باگو گفتم به من البوما ما من الان امروز نشد که کامپیوتر دارن این روایت مفصل در الحدیثه منجل علی ملح سنغیه و عن حق لهیتک تو احصای دیگی دیگه دار غیر این چه نه ورده بدون کامپیوتر دیگه چه بلاصن ورده حالا چه باور نکوهه یه و... ب بله، چه تفاوتی میسوزد؟ و سری؟ بله، و سر بله، اسلامیش میشه چیزی که سه چه ایرانی دوست شده اون چاپش شنوبن مادر رو دیدیه مگه اونجا بود اما این لباس نه عبا ملابسه. نه لباس مصلی چی مصلی نیست که احکام بنادر احکام میگن من دیدم خود من در وسائل دیدم امروز هر چی فکر کردم یادم نمیاد تو تو نگاه کن تو بیکرانフラーت حالا دقت بکنید تو اون کاپ به داره رسی نسخه قد حدق علیهیت تمامی مقدار و این خود بید نه در نسخه بمعاربانی، نسخه مهم اما این حاشیه نداره این روایت از که ارمون یکی که که کلینی در ابواب علیهی آمده روک از خطب علیهیت نسخه یکیه ای این روایت این ابواب جایی که کلینی آورده به اضافه و و علیه ملحفتون و قدر حفت لحیت حالا اون تی شاکل حفت در درودی. نی؟ وسائل لردی؟ از سابق مثلا دستاد از سازه میکارم چون کلاشه که روزی نخواه در, در سابق کار میکردم توی نسخه مرهوم ربانی تو حاشیش نوشته و فکر ببینی شما آنجا هاچی نمو تو نسخه آلوه ای؟ نداره تو این نسخه نه هاچی نداره برای؟ نداره هاچی نمو نکرده به نظر اون نسخه هم خیلیش به نظر خود خدس که ایشون هاچی نسخه یکیه نه یکیه حلبه مشکل دارم مشکل ندارم میگرم این نسخه در, در هم اگر باشه در اینجا در اون خطفه نیست نه هیچ برکی حفظه با خطفه تو ندارم کتا آجردنی هیچ فکر نمی کنی ما تنها یه جونره باید نستجار باید نستجاره باید نستجاره این هم اون نسخه این هم اون نسخه این هم این قسمت روید تو مفصله حالا من بکنم توی برایم چیفه که خ قال دخالت آن را صاحبون لیولاهم خب بیت المنجد منجد دست از رو کشیده شده و بقول ما مبلغان و خیلی تا و علیه منحبوں دردیه و قدر حفظ لحیته و حکه له شش ماشنا و صورت چیزی وجود ان مسائل مسائل فقر مصرفان مسائل خدا مأمور نه یا حسن کل تو لبیق آله ازاقانه قدرت فعّتی نی آنتا و بقول شما هم جو ما تانم من القدي در اون تاريخي که الان نهار سه چهار تا شعر مختلفي ميکنه ما کانم در قد ده حلف عليه ليزه او في بيت ليس فيه الا حقيقي نه علي ليزه علي الان خوندم باز دي كه از اون یه صد دوامش چي لغات دي غيره بوده من روايتم نيست يک نفر اشياء بود در اهل بصره با اين که كه اون خدمت ميزه رسته حضرت و همین هم بوده غیرده نیم سمه اقبله علا فقال این اقبله علا صاحبی, صاحبی. توان برداشت کنه چه مقارنه فرمایی ترخیص های کلیبی روشن میشی چکال کرده فقال یا اخا اهل بسته اینا هم برداشت تو توان ترخیص بعدیش که دخل تعلیه امس و انه بیت و کان انس یومه و بیتو بیتوها والمساومتاه فتزينت لي الا ان اتزينن لها كما تزينت لي خلايا كل اگر به دلیل بکنه فقال له صاحبي جويل سفدار كان الله نخلک في قلبه شیوان ثم الان فرز الله الله ما كان وعلمت ان الحق بما این متن کامل روایت باز به نظر ما این متن کاملا هم صدرش باز حرف کرده و تمام این که این مرد میجا کامل آمده به ذهن من میاد که باز مردمات کنی یه سی که هم اون یه سی مثل این نیست. ای یه که رو برداشته. نه اینکه که مثلا به اصطلاح اون حصه اصطلاحی باشه هم که در کتاب همین جلدی درست من هر جلد شماره بابی هست در سوم سیر،, سیر معروف دیگو داره روایت اینه ازتون من و سوم حدیث شماره چهار ازتون من اصحاب ما احمدت و محمد و خالد. همون برقیه پسن این عثمان ابن ان عبدالله حسن تمام سنب یک جزاره این صدق روایت دیده این کلیش که که شده حدیثه ان الحسن قاله این ظاهرن صدرش این که کسر رو سوش نکده لما انقرده تو نصفی از سرن یا حجی هم رو بوده ظاهرن حجی به مرر تو به مدینه فسته الفان علی شعفر علیه السلام از امان باقر فقاله ها ینبا از نزدیک مدید بیندن فرانم تو مدینه بارد شده باشه فهتی تو ینباه این بیرمان سره فقاله یا حسن مشیق اله ها اون تایی پیادا آمدی قل که این تو آن آخروز ولای ارواحم میام تونان شما نبینم دلم نخواست فقال علیه السلام که من چرا مثلا از این آیام المندی نامه دارم بیرون امی اکالتام این حاله بغله یعنی اختر تا تو آن اتنهها آن مسیح رسول الله چون من سیو خورد وگرنه نمیخواستم بیده از دیروز از بکنه آمدم تا امکان پس بنابراین یه یک بحث رجالی راجع به بحث نزایاتیم آن نمیشه که من میشه کردی بوده از بصره هم بوده، وضع حدیث ما هم در بصره خیلی قریب نبوده بوده. عبدالله بن این مسئله رو ردیشاد نوشته. و لذا الان ما به لحاظ تاریخی غیر از خود برگردیم، مسئله اصلی از از کجا یعنی کی رو یاد داشته؟ چون عثمان نیسان صاحب کتاب خود ابن مستان هم هست. اما حسن زیاد صاحب کتاب میظاهرت و نظام در فعالیت عثمان شهرامده. یک نفر از چی بوده خدمت امام یک قصه واقعی واحد هم هست. که شرح کاملش الان خونده ظاهرا این چند تا مورد رو به با هم چسبون یه روایت وحدت قصه‌ی واحده این هم راجبی ببین علی الاحال در این روایت مورد که بنابر نسخه مشهور و صحیح خصصا هست چون در حالیه یکی از عدل که اگر واقعا خلل بود لاقل در تاریخ 250 ساله الان یه بار واقع نشون چون بحث چیه در سنن پیغمبر حال اکتفایمون اون دوران مثلا پیغمبر نمی‌کنن از سال 11 هجری تا دیست و مثلا ایبس کوراش میشه غالبا مثلا بوده یک از, از یک بار هم ما اون چی که داریم اینجا خففه‌ای خب داریم خب شاید این عادت اجتماعی نم بوده ولی و این که اصلا کراحت باشه بریده. یک بار لا حدیث شماره 3 در همین باب انهم یعنی عدت و من اصحاب نو کردم این ما به نظر خود ما الان این تنمی نیست یا حالا بگر بگیم اینو اصطلاح محدثینه و این تنمی نیست چون ایشون در حدیث قردیش عدت و من اصحاب نو احمد برقی باز میگه انهم ان سر عده از عده احمد. مشترک دارن اما عده سرقیه از احمد. عده احمده آزتا زنیه هستی برگ لیکن این هست الان ما داریم این داریم این خلاف قاعده است و مشکل اساسی اشکال به ساب و ساید تو کافی هم من دیدن من او اگه ما کافی نایدوده ای اشکال بگه به ساب و ساید متاسفانه تو کافی هم داره مثل اینگه ادرسان نسال و انسل و اینگه انهم ان احمد برگی خیلی عجیبه انهم نبن نگه قاعده وقتی مرکع زنی فرق میخونه اده سر غیر از اده احمد برگی من احتمال میزن مصطلح حدیثی بوده این که عزبیه همی قلبی بخوا مثلا میگه زیر و حسن و حسین پیشه من موزن به اونها یعنی به تغییر و جعفر مثلا زنگی کسی که سیگه برگرده خب زنگی رو که سیگه برگرده خب این تو وسائل داره که من اول تصاور میترم اشکال به وسائل وارده تسامحات وسائل بعد زن تو کافی هم داره بوده هست این تو خود مخت هلا این مصدب دفتر احتمالی که من دادم بالاخره بعد از مراجعات زیاد ظاهرم مصطلح حدیثیه ظاهرم و که ما الان در علمی دنیای علم قبول نمیکنه که من زمیر غیر از خود زمیر باشه این دیگه قابل قبول نیست اما اصطلاح علمیه این جوامع حدیثی و رجالی خیلی مهمه است وقتی یه حدیثی برسه که ریجاشه چون مثلا شب این کار تو مزار کبیری زيادالدین مشری اونجا دیگه خیلی خراب شده دیگه اون اصلش خیلی شد خراب نشده بعد دیگه خیلی خراب شده ان شاء الله اگه شما مطالب خوبی جای من ان شاء اگه خداوند توفیق داد دیگه اینا شرح طولانی مفصل داره اونجا عرض می‌کنم ان شاء الله تعالی ان بعض از اسحابه ابن دهبان دهمان عبد الله بن عبدالله, عبدالله واسطی دهران مرموم نجاکی تضعیف شره تیدی هم برامو همه روشن نیست که سر تضعیف شیه ایشان کتاب درست و نقل کرده درست نبی منصور واسطی خب حدیث مشکل داره قال به نبی عبدالله علیه السلام قال مرم نبی رجل طویلون لحیه فقال ما کان علا حدا لو حیع من لحیته رجله فحیع به لحیته مشه. با با نیم بین لحیت این لحیه یعنی خود این استخان استخان خود خک لحیه مویی که روی او هست لحیه صبح دخل علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما قال ها کلا فرف این درسته خیلی بلند الوقت این روایت به ذهنم یا تو مسادر سنیام یا الان بایدن به ذهنم از مسادر اصحاب ما ارز کردم روایاتی که مربوط به یکیه میشه من توضیحاتش اول ارز کردم ای خایده هیر سنیا به اصانی متعدد و سعیم هم احفالله. ما اصلا در کتبه ارز فقط صدوق نهاری که در واسه در ایز و موسیم ارز کردی ارز ها تو دائم آمده ای آمده اما توی کتبه مشهور ما کلی اصلا نهارده روایات به هیرم کلن مرون شهر سوسی مثلا شیخ توسی مثلی که به نظرم شیخ موفی در مغنه راجع به لحیه بحثی نداشته تو این شرم مغنه هزاره. اون به مناسب مغنه بالحدیسی روایات لحیه شیخ توسی نیمورده شیخ کلیه هم روایات کوتاه کردن لحیه رو بوده باب قرار داده خوندی منان شما باب قرار داده اما روایات ها رو نیمورده بله به مناسب هسته کتابه حجت کافی کتاب باب الحجه یه حدیثی اون خانم خبابه والدی اگر واقعیت داشته باشه اونجا حلقه حلقه لگه رو داره معذالت متن افاولده ها رو نداره پس در قدر این بابی که الان میخونیم تمام مابعی این دو نفره یا کلینی یا صدوق یا این تنهایی یا هرشون با هم این دیگه به طور کلی قاضی کلی روایت حسن زیاد از منطردات کل اما این روایت درست درست نبی منصور واسطی این رو هم صدوق مرسلن آورده حالا اینجور مرسله ها رو یا چون این مصدر در قم بوده اونجا آورده از کنه گرفته. حدیث شماره چهار و اهلیه علی ابن ابراهی انه عبی، ان ابن عبی عمر انه هشامیل و مسننا که سرست انه سدیر سیرفی حدیثشون اسمش سدیر صدیر نخونه سدیر ابن حکیم یا صہیب و الهاكنه صہیب اونها مصرحن این به اصطلاح مصرحن از سیره سیرتی خان رقیط ابا جرحر یاخذو عارزه و يوبقتن اللحیه تن حدیثم از بلخراز کلدیست این حدیثم مثل احادیث قبلی دلالت میکنه بر جواز عقد از, از دو طرف یعنی هم از آرز و هم از مقدم از لحیه بین این معنا که حضر از دو طرف میگرفتن یعخوز رو کتا گذن اما نسبت به جلو رو پرپشت میکردن یوبت ندهیتن تفتی یعنی پرپوش شدن من عرض کردم در کتاب قریب الحدیث چون هم دوارد نشدیم، در کتاب قریب الحدیث ابو عبید نه ابو عبیده ابو عبید محمد, محمد موسنه قاسم سلام اسم ابو امير معمر ابن مصنف اهل بصره هم هست اما ابو ابی الحسن السلام از خراسان هراز اونجا در کتاب قریبن حدیث ابو ابی الحسن السلام داره که نقل کرده از کسائی به این دون این حدیث اینجوری اما رسول الله ان توفاه الله ایشو تعبیر توفاه داد بعد نقل کرده کسائی هو ان توفاه الله من احتمال ندیدم از اونی که من کتابهاشون دیدم نیدنم از که شعر لهی نوشتن این دوستایی که من دیدم علاوه بر که من دیدم نه احتمال میدم کسایی سایه عقیدش این بوده ا ای افا معناش ولی کردن چیزی نیست اینه من هم این بار احتمال نمیدم ایشون یشون ای افا رو تطویل لهی نگرفته ا رو ب... این که کی... این... چون بزرگان قدیم خیلی دقیقه بودن من کرام ارض کردن نوشته اماره... قال رسول امر رسولم توفلهیه گفته اف... این هوه ان توفر بر بر تو کب بر احتمال میدم کسایی که از بزرگان اهمی لغت این ساخن جز به اوائده تدوین لغت کسایی چون اول قرآن دومه ما تقریبا بلایات نه و لغت و بحثه اددی از نما های دوگم و در نه اول همونش اونی که رسمی اول قرن دوم کتاب خلیل و کتاب هایساایی به نظرم چه به نظر هم میاد ها. چون نی بر کسی گفته باشه چه سای فا و رو تکییل و لحده نگرسه تکیدی روده بهت چون ممکن انسان ریش بکنه باریک هم دراز بشه نه میگه جوری در که این ریش پرپشت بشه این همه رسول الله کردن و رها کردن نیست به حتی کردن کردن نه نه مثل دیگه طالبان هر نه باید کردن یه باید باید باید کرد دارم خودشون در اقوالشون هست دقت کردید اگر این باشه احتمالاً احتمالاً احتمالاً ازیر طبیعیا مخاط همین معنای کسایی رو بگیره دوستان شما احتمالاً چون یکی از شون اهل الهیون سلام شرح سنن رسول الله هست. اگر این باشه من همه همیشه احتمالاً چون نهیدم بزرگانم ماتصدی شده باشم خود من به احتمال میدم احتمالاً کان یع خدا و یعنی مراد این است که اولا که مراد رسولا از نهیه این جلو به است آرزه این اشرا ناره کرده اون جلو نهیه هم اعفا یعنی تبتیم یعنی توفیر تکلیر نه تکلیر نه دراب شده نبیدیم امر رسول الله انتو افااللهیه این شاید صدیر سیرفی هم که در کوفه بوده مثل کسایی این میخواسته همون نقطه کسایی رو بگه که رأی تو عبا جعفر یعخوز و در آرزه تفتی نیامده در این جلو ریش و یوبت لحیفه پس با اون تفسیر کسایی خیلی نزدیک میشه مراد از افااللهیه پر کردن ریشه و اگر این شد با روایت قبل هم جور در میاد یعنی هدف اساسی این نبود که بیش دراز بشه روایت قبلی به تخظیمش بزنه اصلا هدف اساسی پر بودن ایش بود که خیری نفری تا وصول مثلا یک قرضه پر باشه نه اینکه دراز بشه این هم روایت چهارم که از منقلدات مرحوم کلنیت قدس الله و نفسه این روایت همینش معتبره روایت پنجم هم, هم بود که از جامعه بغدادی بود که از کرد مرحوم استاد تابنا معتبر می‌دونستن به خاطر جامعه بغدادی، بعد برگشت ماعزال شنشه معتبره به خاطر کتاب علی جعفر که در نسخه صاحب, صاحب بوده. البته که این روایت قابل خاصل... این <تصح> جامعه بغدادی شنشه این به روایت باب تا انشالله بقی الله علیه